موج یاران گوند آمد موج گل یاران در آمد درآمد را رهبر آمد عاشقان را رهبر آمد روح رهی نپیم بر روح رهی ها نپیم بر وج عشقو با آمد اوج عشق با بر آمد ابن زهرا يا ابن زهرا يا ابن زهرا يا ابن بسم الله الرحمن الرحيم امروز روز نهم ربيع الاوله در روایت معتبر تعبیر ازش شده به الغدیر ثانی این دو تا کلمه اینجا عرض میکنم یکی خود این روایت روایت احمد ابن اسحاق که مرحوم علامه مجلسی در جلد 95 بحار مفصل نقل فرمودن و ریشه از مرحوم سيد ابن, ابن طاووس رضوان الله عليه انا از حضرت هادي عليه الصلاة والسلام با سند مذكور نقل این روايات خود سندش بتنهائي اعتبار خاص نداره فقط بنظر ميرس الرواية احمد بن اسحاق از نظر السند محفوف به قرائن که یکی از مصادیق حجت در باب روایات اون است که محفوف به قرائنی باشه که اون قرائن مورس اطمینان ولو نوعی چه نوعی چه شخصی شخصی برای شخص اعتبار داره نوعی برای همه اعتبار داره به صدور مضمون قرونی که در این روایت هست چند تا قرینه است یکیش این است که خود سید ابن طاووس کتاب رجال داره اهل خبر است در این جهت مقام بلندی خودش داره این روایت را وصف کرده به عظیمت الشأن یه قرینه یکی دیگه خود سید ابن طاووس نسبت داده است این روایت را به عمل جماعتن اگه یه روایتی سندش مجهول بود اما جماعتی بهش عمل کردن این سابقا صحبت شد فقه مکرر استناد کردن حتی در احکام الزامیه به این جور نحو اینم دوتا سیمش این است که سید ابن طاووس نقل فرموده که به مضمونه ها عدت و روایات ها عن الصدوق یعنی فرموده نه فقط یه روایته چند تا روایت دیگم هست که از ابن بابیه از صدوق رضوان الله علیه نقل کردیم خود ایشون اون روایات رو دیگه نقل نکرده گفته اونا مضمونش همینه در کتب صدوق رضوان الله علیه که به ای دیناس هم اون روایات من ندیدم نقل کرده باشن حالا یا خودش صدوق به خاطر جهات ملاحظه ای جهات سیاسی این روایات رو نقل نکرده تو کتبش اون زمان یا تو کتابهای نقل کرده صدوق که تلف شده آتیش دادن دهها ها و ده ها از کتب شیخ صدوق اسمش فقط ذکر شده رفت به یه نسخه بوده دو نسخه بوده آتیش زدن تلف کردن یکیش مدینه العلمه که معروف شاید روایات صدوق تو اونجا ها نقل کرده بوده سید ابن طاوس یه مرد فقهست میگه رویناها عن ابن باب بیه معلوم میشه نقل از ابن بابوی شده یک از روایات دیگر فقط خب به ما نرسیده فی نقل صدق این هم یه قرینه یعنی معید این روایت احمد ابن اسحاق یه قرینه دیگه مشهور فقه ها نسبت به شهرت داده شده حالا نمیگه مشهور بسیاری از فقه ها به این روایت استناد کردن در باب اغسال که تو عروه هست، صاحب جواهرم متعرضه دیگران هم دارن، صاحب مستند هم دارن، غسل تاسع ربیع الاول، به عنوان اغسال مستحبه، کسایی که قاعده تسامح را قبول دارن که مشهور هستن، قبول دارن این را متعرض شدن، وقت، پس، این روایت اجمالاً مورد عمل توفقه هم شده و این قرائنو پیش هم بذاریم بعید نیست اطمینان نوعی به صدور روایت از معصوم علیه الصلاه و السلام این سندش میایم سر دلالتش تعبیر شده تو این روایت از امروز به الغدیر الثانی مسئله این که این اول روز امامت آقا حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و صلوات الله وسلامه علیه این حرف تام نیست امروز دویو من روز امامت حضرت نه اولین روز خصوصاً بنابر قولي کہ حضرت عسكري عليه الصلاة والسلام شبه هشتم شهيد شدن از دنیا رفته لحظة شهادة حضرت عسكري روز امام اول اول روز امامت ظاهرية آقا حضرت بقية الله صلوات الله وسلامه عليه بله به جهاتی این ذکر شده اون جهات هم فی محله هاست ای نداره صاحب جواهرم اشاره کرده به این جهت امروز روز دوم حسب تاریخ حسب اینکه شهادت حضرت عسکری علیه الصلاة و السلام بنابر مشهور روز هشتم بوده امروز روز دوم امامت حضرت نه روز اول امامت روز اول امامت دیروز بوده. پس واقع مطلب این است که امروز همین جوری که تو این معتبر احمد ابن اسحاق هست الغدیر الثانیه شیخ مفید در مقنعه جور فرموده ولایت و اولیاء الله تعالی مفترضت و تو اعدائهم واجبتن على کل حال مسئله تعبیر غدير غدير ثاني یعنی اون غدیر معروف غدير اوله این مسئله کنار هم گذاشتن تولی و تبریه غدیر اول تولیس غدیر ثانی تبریس، و اینا دوبال عقیده اسلامه تولی و تبری تو فروع الدین ده تا برای بچه ها شموردن که اینا حفظ کنن. اگر نه تولی و تبری مسئله جنانه نه مسئله ارکان تولي وتبري جزء شؤون اصول الدين توحيد تولي اولياء الله تبري از اعداء الله اين از شؤون توحيد نبوت تولي رسول الله واولياءه وتبري از عداء رسول الله جزء شؤون نبوت امامت تولیه ایمه علیه هم صلات و السلام و اولیائه و تبری از اعدا ایمه این اصول دینه یعنی جزء شؤون و توابع اصول دینه ولی هذا چون مسئله جنانیه نمسئله ارکانیه نمسئله اعمالیه تا اینکه جزء فروع دین حساب بشه اینو برای که بچه ها حفظ کنن چیز خوبی هم هست بدنی این را ذکر کردن این جهت قرآن کریم فرموده و کررت قرآن این هست یه آیه سریحش این است که بسم الله الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. تولية أولياء الله، فما ودّت أعداء الله إن أفهم اسمش إسلام نيس، إسلام يعني تولية أولياء الله، وتبرّية أز أعداء الله، تبّ تولية خدا ورسول وأمّي أطهار عليهم عليهم الصلاة والسلام. و اولیائهم یک رکن الغدیر الاول و تبری از اعدائهم این رکن دویوم. این دوتا با هم میشه اسلام لا تجدو هم یکی از آیات در این زمین است روایات که بلمعات هست صدها روایت شما مراجعه کنید جلد هشتم بحار بحار کمپانی چاپ قدیم این جلدهای صد ده جلدی چند جلده مراجع کنید روایات الصحاح الصراح نه یکی نه دوتا نه پنج تا نه ده تا اگرم کسی واقعش چیزی خیال میکنه و گاهی میگن و گاهی منویسن حسن ظن به آنها باید گفت این است که اینا این روایاتو ندیدن رسیدن نگاه کنن، مهمشون نبوده، دنبالش نرفتن. معصومین علیه الصلاة و السلام در روایات صحیح متواتر مسلما. مکرر این مطلب را به مختلف انحاء بیان کردن، خیلی هم گران بود بیان کردنش. اون قدر بلاها سر خودشون سر شیعه آمده در اثر بیان کردن این مسئله الغدیر الثانی. نه این تعبیر الغدیر این معنا لہذا این تعبیر الغدیر که در این معتبر احمد بن اسحاق وارث شده به نظر میرسه به جهت مسئله شفع غدیر اوله رکن دویومه برای رکن اول که قدیر اول باشه مسئله تولی و تبریس مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه از این روایت اشون استفاده کردن في هم هست که این روایت دلالت داره برای اینکه این عید است عید یک حکم شرعیه باید از شرع برسه حکم وزعیه جعل میخواد جعل تعبدی میخواد عرض شد یه وقت نیمه ماه رجب روز بسیار مهمیست فلان روز روز بسیار مهمیست اما تو عدل شرایه تعبیر عید نشده ازش عرض شد عرفه تعبیر عید نشده تو روایات مرحوم عباس قمی رضوان الله علیه در مفاتیح میگن که مثلا ایشون خودشون از خودشون میگن نسبت به روایت هم نمیدن میگن عيد عظیمی عرف الجار چه تعبیر عید نشد نه از نظر فقهي مانی میتونیم یه جایی رو عید تعبیر کنیم یعنی عید شرعی ها حساب بکنیم به دوری اینکه از ادله استفاده بشه عید بودنش مرحوم صاحب جواهر از معتبر يا احمد بن اسحاق استفاده کردن که عید جواهر جلد 5 صفحه 44 يشون وقد عثرت على خبر مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله في فضل هذا اليوم وشرفه وبركته وأنه يوم سرور لهم عليهم السلام ما يحير فيه الذهن مع كونه عيدا لنا ولأئمتنا عليهم السلام يشمع على اجربيه نقلنها اجتهاده خصوصه حسه خصوصه يعني عيد براي ما و براي ائمامه خود ان تعبير الغدير الثاني دو تا برداشت ازش میشه کرد. یکی این که ثانی بودن، این یک نوع حکومت و توسعه دلیل اوله. فقه ها من دنباله کلمه صاحب جوهر که فرمودن معکونی کونهی لنا ولا امتنا علیه السلام عرض میکنم. توضیحی برای فرمایش صحب جواهر ببینید در فقه ما خیلی داریم قیام در نماز واجبه اگر شخص قیامه یقم صلبه نتونست انجام بده مراتب بعد قیام که از ادله استفاده میشه این مرتبه بعدی قیامه این مقدم بر جلوسه در باب وضو و غسل میگن غسل جبیره مقدم بر تیممه تیمم بدل غسله اما بدل چه غسلی؟ بدل غسلی که به تمام مراتبش امکان نداشته باشه نوبت به تیمم میرسه دلیل غسل جبیره وزوی جبیره حکومت داره بر دلیله غسل تمام بدن یعنی مباشره الماء تمام البدن توسعه میده دلیل غسل را اینجا تعبیر الغدير الساني میشه برداشت ازش کرد این توسعه در الغدير الازله یعنی این تعبیر استظهار ازش میشه کرد که قدیر دوم صداق داره یکی اون یکی این امخ اگر بنا شد قدیر اعظم الاحیاد باشه به تمام اقسامش اعظم الاحیاد خواهد بود این یه نکته یه مطلب من عرض می کنم آقایون خودتون برداشت بفرمان یه نکته دیگه یه مطلب دیگر این است که همیشه اگر اول و دویوم گفتن معناش این است که دویومی پایینتر اولی کلمه اثانی این ظهور نداره بله کلمه بدل ظهور داره در این جهت اما کلمه اثانی ازش در نمیاد که اول مهمتر یاد يو دویم در وصف آقا امیر المؤمنین صلوات الله علیه مکرر تو روایات وارد شده یکشان فرمایش حضرت سجاد صلوات الله و و علیه در شام رومنبر فرمودن ابن من حضرت امیر را ذکر فرمودن و هاجر الهجرتین و بایع البيعتین یه هجرت اول بود هجرت دویوم یه بیعت اول بود یه بیعت دویوم از این صرف هجرتین یکیش قبل زمانن یکیش بعد بیعت تا یکیش قبل زمانن یکیش بعد صرف تأخر زمانی ظهور داره که اولی اهم بوده افضل بوده نه. یه از دلیل دیگه ما باید به دست بیاریم اگه داشته باشه دو تا قدیر هست یه قدیر هیچ ده هم از الحج بوده یه قدیر دو ماه و چند روز بعدش بوده نهم رویع الاول از نظر زمان اون قبل بوده این بعد بوده این ثانی تعبیر ازش شده یعنی ما باید از جای دیگه به دست بیاریم که آیا حالایی که قدیر افضل اعیاده با این حکومتی که القدیر ثانی اینجا ازش استفاده میشه از بیرون باید به دست بیاریم که تولی افضل یا تبری هر دوش واجبه هر دوش لازمه اما کدومش افضله این دیگه با آقایون امیدوارم به برکت امروز و به برکت صاحب امروز که حضرت زهرا صلی الله علیه ها در ابتدا حسن اولین شهیده در این راه حسن خداوند تبارک و تعالی به همه عنایت کنه هم قدر امروز را بدانیم هم هر کسی در حد خودش اون قدری که میتوانه انجام وظیفه بکنه هم سعی کنیم کسانی که دور از اهل بیت حسن و دور از این معانی اینا حسن مقدمات قبلیش را نمیدونن تام نیست اونا مقدمات قبلیش براشون تهیه بشه هدایت بشن که اونام نزدیک به احل بیت بشن و الله علی محمد و حاله طاهمیم